مثنوی معنوی مولوی برنامه تفاوت عقول در اصل فطرت خلاف معتظله که ایشان گویند در اصل عقول جزوی برابرند. این افزونی و تفاوت از تعلم است و ریاضت و تجربه. این تفاوت عقل ها را دان در مراتب از زمین تا آسمان. هست عقل همچو قرص آفتاب. هست عقل کمتر از زهره و شهاب. هست عقل چون چراغ سرخوشه. هست عقل چون ستاره آتشه. زان که ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدانبین بین بردهد. ها عقل جزوی عقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را بیکام کرد آن ز سیدی حسن سیادی بدید وین ز سیادی غم سییدی کشید آن ز خدمت ناز مخدومی بیافت وین ز مخدومی ز راه عز بتافت آن ز فرعونی اسیر آب شد و از اسیری سبت صد سهراب شد لعب معکوس است و فرزین بند سخت هیله کم کن کار اقبال است و بخت خیال و هیلا کم تنتار را که غنی ره کم دهد مکار را مکر کن در راه نیکو خدمتی تا نبوت یابی اندر امتی مکر کن تا وارهی از مکر خود مکر کن تا فرد گردی از جسد مکر کن تا کمترین بنده شوی در کمی رفتی خداونده شوی روبهی و خدمت ای گرگ کهون هیچ بر قصد خداوندی مکن لیک چون پروانه در آتش بتاز کیسه زان برمدوز و پاک باز زور را بگذار و زاری را بگیر رحم سوی زاری آید ای فقیر زاری مزتر تشنه معنوی است، زاری سرد دروغ آن غوی است. گریه اخوان یوسف هیلت است که درونشان پرز رشک و علت است. ایت آن عربی که سگ او از گرسنگی میمرد و انبان او پرنان آن سگ میمرد و گریان آن عرب اشک می بارید و می گفت ای کرب سایل بگذشت و گفت این گریه چیست نوحو زاری تو از بحر کیست گفت در ملکم سگه بود نیک خو نک همه میرد میان راه او روز سیادم بود و شب پاسبان تیز چشم و گیرو دزدران گفت رنجش چیست؟ زخم خورده است؟ گفت جوال قلب زارش کرده است؟ گفت صبر کن بر این رنج و هراز صابران را فضل حق بخشد عوض بعد از آن گفتش که ای سال آرهار، چیست اندر دستت این انبان پر گفت نان و زاد و لوت دوش من، می کشانم بهر تقویت بدن، گفت چون نتهی بدانسگ نان و زاد، گفت تا این حد ندارم داد. دست ناید بی درم در راه نان لیگ هست آب دودیده رایگان گفت خاکت بر سر ای پر باد مشک که لب نان پیش تو بهتر بهترز عشق عشق است و غم آبه شده می خاک خاک خون بهده کل خود را خار کرد او چون بلیس، پاره این کل نباشد جز خسیس. من غلام آنکه که نفروشد وجود، جز بدان سلطان با افضال وجود. چون بگیرید آسمان گیریان شود، چون به چرخ یا ربخان شود، من غلام آنمس همت پرست کو بغیر کیمیا نورت شکست دست اشکسته برابر در دعا سوی اشکسته پرد فضل خدا گر رهایی بایدت زینچاه تنگ ای برادر رو برازر درنگ. مکر حق را بین و مکر خود بهل، عیزه مکرش مکر مکاران خجل. چونکه که مکرت شد فنای مکر رب، برگشای یک کمین بلعجب، که کمینه آن کمین باشد بقا تا ابد در ارتقا در بیان آن که هیچ چشم بد آدمی را چنان مهلک نیست که چشم پسند خویشتن بر مبین و پای بین تا که سوال این نکشاید کمین که بلغزت کوه از چشم بدان یزلقونک از نبی برخن بدان احمد چون لغزید از نظر در میان راه بیگل بیمتر در عجب درماند کین لغزش زی چیست؟ من نپندارم که این حالت تهیست. تا بیامد آمد آگاه کرد. کان ز چشم بد رسیدد و از نباد. گربود غیر تو دم لا شده. سید چشم و سخره افنا شده. لیک، آمد اسمت دامنکشان وین که لغزیدی بود از بحر نشان ابرت گیر اندران که کن نگاه برگ خود ارزه مکن ای کم زکا افسیره ان و انیقا الذين كفروا ليزلقونك یز به یا رسول الله در آن نادی کسان میزنند از چشم بد بر کرکسان از نظرشان کله شیر عرین واش تا کند آن شیر انین بر شطر چشم افگند همچون همام وانگهان بفرستدند در پی غلام که براو از پی این اشتر بخر، بیند اشتر را سقط او راه در. سربوریده از مرز آن اشتر کوبتک با اسب می کرده مری، که از حسد و از چشم بد بی هیچ شک سیر و گردش را بگرداند، فلک. آب پنهان است و دولاب آشکار لیک در گردش بود آب اصل کار چشم نیکو شد دبای چشم بد چشم بد را لا کند زیر لگد سبق رحمت راست و او از رحمت است چشم بد محصول قهر و لعنت است رحمتش بر نقمتش غالب شود چیره زین شد هر نبی بر ضد خود کو نتیجه رحمت است و زد او از نتیجه قهر بود آن زشت رو هرسه سبب یک تاست این پنجاه تاست هرسه شهوت ما رو منصب اجده هاست هرسه از شهوت حلق است و فرج در ریاست بیست چندان است درج از الوحیت زند در جاه لاف تامع شرکت کجا باشد معاف ذلت آدم ز اشکم بود و باه بان ابلیس از تکبر بود و جاه لاجرم او زود استغفار کرد بان از توبه استکبار کرد. هرس حلق و فرج هم خود بدرگی است. لیک منصب نیست آن، اشکستگی است. بی خوشاخ این ریاست را اگر بازگویم دفتر باید دگر. از به سرکش را عرب شیطانش خاند، نی سطوره را که در مرآب ماند شیطنت گردن کشی بود در لغت مستحق لعنت آمد این صفت ست خورنده گنجدن در گرد خان دوری جو نگنجد در جهان آن نخواهد کین بود بر پشت خاک تا ملک بکشد پدر را زشتراک. آن دستی که الملک و اقیم قطع خیشی کرد ملکت جو زبیم. که اقیم است و ورا فرزند نیست. همچو آتش با کسش پیوند نیست. هرچی یابد او بسوزد بردرد چون نیابد هیچ خود را می خورد هیچ شو با تو از دندان او رحم کم جو از دل سندان او چونکه گشتی هیچ از سندان مترس هر سباه از فقر مطلق گیر درس هستلوهیت ردای زلجلال هر که در پوشد برو گردد و بال تاجزان اوست آن ما کمر وای او که از حد خود دارد گذر فتنه ای توست این پر تاووسیت که اشتراکت باید و قدوسیت قصه آن حکیم که دید تووسی را که پر زیبای خود را میکند به منقار و میانداخت و تن خود را کل و زشت میکرد. از تعجب پرسید که دریغت نمی آید گفت می آید اما پیش من جان از پر عزیزتر است و این پر ادوی جان من است. پر خود میکند تا او بدشت یک حکیمی رفته بود آنجا بگشت گفت تا اوسا, چون این پر سنی بیدریغ از بیخ چون بر میکنی خود دلت چون میدهد تا این حلال برکنی اندازیش اندر و حل. هر پرت را از عزیزی و پسند حافظان در طی مصحف می نهند. بهر تحریک هوای سودمند از پرتو باد بیزن می کنند. این چه ناشکری و چه بیباکی است؟ تو نمی دانی که نقاشش کی است؟ یا همی دانی و نازی می کنی قل ترازه می کنی. ای بسا نازا که گردد آن گناه افگند مربنده را از چشم شاه. ناز کردن خوشتر آید از شکر لیک کم خوایش که دارد صد خطر. ای مناباد است آن راه نیاز ترک نازشگی رو با آن ره بساز ای بسا نازابر زد پر و بال آن بر آن کس شد و بال خوشی نازر دمی بفرا زدد بی مترس مزمرش بگدا زدد وین نیاز ار چکل می کند سادر را چون بدر انور می کند چون ز مرده زنده بیرون می کشد هر که مرده گشت او دارد رشد چون ز زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگ می تند مرده شو تا مخر جلهی سمد زنده زین مرده بیرون آورد دیشوی بینی تا اخراج بهار لایل گردی بینی ایلاج نهار برمکن آن پارک نپ زیرت رفو روی مخراش از عذا ای خوب رو آنچنان روی که چون شمس زهاست آنچنان رخ را خراشیدن خطا زخم ناخن بر چنان رخ کافری است که رخ ما در فراق او گریست یا نمی بینی تو روی خیش را ترک کن خوی لجاجندیش را بیان آنکه صفا و سادگی نفس مطمئنه از فکرتها ها مشوش شود چنانکه بر روی آینه چیز نویسی یا نقش کنی اگرچه پاک کنی داغ بماند و نقصان روی نفس مطمئنه در جسد زخم ناخونهای فکرت می کشد بعد بد ناخون پرزهردان می خراشد در تعمق روی جان تا گشاید اقده اشکال را در هدس کرده است زرین بیل را عقده را بکشاده گیر ای منتهی اقده سخت است بر کیسه تهی در گشاد اقده ها گشتی تو پیر اقده چند دگر بکشاده گیر کان بر گلوی ماست سخت که بدانی که خسی یا نیک بخت حل این اشکال کن گر آدمی خرج این کن دم اگر آدم دمی حد آیان و عرز گیر حد خود را دان که نبود زین گذیر چون بدانی حد خود زین حد گریز تا به بی حد در رسی ای خاک بیز عمر در محمول و در موضوع رفت بی بسیرت عمر در مسموع رفت هر دلیل بی نتیجه و بی اثر باطل آمد در نتیجه خود نگر جز به مصنوع ندیدی سانعه بر قیاس اقترانی قانعی می فضایت در بسایت فلسفی از دلایل باز برعکسش سفی این گریزت از دلیل و از حجاب از پی مدلول سر برده بجعیب گر دخوان او را دلیل آتش است بی دخوان ما را در آن آتش خوش است خاص این آتش که از قرب و ولا از دخان نزدیکتر آمد به ما پس سیهکاری بود رفتن ز جان بهر تخیلات جان سوی دخان در بیان قول رسول علیه السلام لا رحبانیت فی الاسلام برمکن پر را و دل برکن از او زان که شرط این جهاد آمد ادو چون ادو نبود جهاد آمد محال شهوتت نبود نباشد امتصال صبر نبود چون نباشد میل تو خاسم چون نبود چه حاجت خیل تو این مکن خود را خسی رهبان مشو زانکه عفّت هست شهوت را گراو به هوا نهی از هوا ممکن نبود غازی بر مردگان نتوان نمود انفقو گفته است پس کسب بکن زانکه نبود خرج به دخل کهون گرچه آورد انفقو را مطلقو تو بخان که اکسبو سم انفقو همچنان چون شاه فرمود اسبرو رغبتی باید که آن بی رو پس کلو از بحر دام شهوت است بعد از آن لا تصرفو آن افت است چون که محمولون بهه نبود لدائی، نیست ممکن بود محمولون علای. چونکه رنج صبر نبود مرترا، شرط نبود پس فروناید جزا. هب بزا، آن شرطو، شاد آن جزا، آن جزای جزا جان فزا، نامهای مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.